بوئنوس آیرس، آرژانتین. 11 می 1960. باران نمنم پاییزی شروع شده بود، اما مردانی که در خیابان گاریوالدی منتظر ایستاده بودند اهمیتی نمیدادند، باران صورتشان را خیس کند. آنچه نگران نشان می کرد این بود که اتوبوس شماره 203 مثل همیشه در موعد مقرر، یعنی ساعت 7:40 بعد از اصر سر رسید. اما کسی که آنها برای استقبال از او برنامه ریزی کرده بودند از اتوبوس پیاده نشد وقتی اتوبوس در ایستگاه بالای خیابان توقف کرد زربان قلبشان بالا رفت هر کدام از آنها در موقعیت خود قرار گرفتند برای این کار سه هفته تمرین کرده بودند اما وضعیت آماده آنها توری نکشید و زحمتهایشان گویی بر باد فنا رفت همان باد پاییزی که صورتشان را می اتوبوس ایستگاه را ترک اینکه حتی یک نفر از آن پیاده شود چشمهایشان به آن خیره مانده بود همه آنچه که چندین هفته در آن مکان با دقت مرقبش بودند و با تمام وجود لحظه به لحظهش را از بر شده بودند اکنون در ذهنشان مرور میکردند یک زن و یک مرد از اتوبوس پیاده و سپس از یکدیگر جدا می شدن و هر کدام به یک سو می رفتند مرد چند لحظه می ایداد و سیگاری روشن میکرد بعد از خیابان رد می شد و به طرف منزلش میفت اگر اتومبیلی نزدیک میشد مرد چراغی را که همیشه همراه خود داشت روشن میکرد تا راننده وسط آن تاریکی مطلق خیابان او را ببیند وقتی به خانهش می میرسید قبل از وارد شدن یک دور کامل به دور خود میچرخید تا مطمئن شود در امنیت است همین که وارد خانه میشد همسر و پسرش به استقبالش میآمدند و سلام میکردند بعد از اون بود که چراغهای بیشتری را روشن میکرد و خانه روشنتر میشد در تمام مدتی که آنها مراقب آن مرد بودند او هر روز دقیقاً طبق همین روال همیشه رفتار می کرد و این روند هرگز تغییر نکرده بود. به همین دلیل تغییر این جریان به طور مشخص در آن روز آنها را رو به شدت نگران و مضطرب کرده بود. مردان در سکوت نگاههایی با هم برد و بدل کردند. همه متفق بودند که بهتر است در موقعیت هایشان باقی بمانند. همگی درون دو اتومبیل سیاه رنگ، یکی شورلت و دیگری بیوک نشستند. فقط راننده یه بیوک همچنان بیرون ایستاده بود. کاپوت ماشین را بالا زده و روی آن خم شده بود. اینطور به نظر می که مشکلی برای خود را به وجود آمده است و او سعی دارد آن را برطرف کند. هدف مورد نظرشان به محل قرار همیشگی نرسیده بود. در سکوت با هم توافق کردند عملیات را متوقف نکنند. نکنند. هرچند این تصمیم با تمام آموختهای اطلاعاتی و امنیتیشان که سالها بر اساس آن آموزش دیده بودند کاملا در تضاد بود. آنها می‌دانستند در چنین عملیاتی اگر هدف مورد نظر کاری بر خلاف روند انجام داد، شکارشی باید به مسیر خود بازگردد و اقدام بعدی خود را با برنامه جدید و برای یک روز جدید ترسیم کند. آنها یق... یقیناً می‌دانستند که در چنین موقعیت‌هایی عواطف و احساسات و یا اعمال نظرات شخصی و احساسی جایی ندارد. مگر آنکه اجرای دقیق و ادعال عملیات از پیش نشانههایی از خطرات اجتناب‌ناپذیر داشته باشد. اما گویی همه این موارد را از یاد برده بودند، احساسی که اکنون بر آنها چیره شده بود، تمایل شدید به اتمام عملیاتی بود که به خاطرش به آنجا آمده بودند. حاضر بودند حتی به قیمت خطرات پیشبینی نشده، کارشان را تمام کنند. در ساعت 8 و 5 دقیقه، امیدهایشان دوباره زنده شد. شراخ های یک اتوبوس که به طرف ایستگاه میآمد از دور درخشید. چند دقیقه نگذشت که اتوبوس بعدی این خط از راه رسید. سرعتش را کم کرد و صدای ترمزش بلند شد. بالاخره در ایستگاه ابتدای خیابان گاریبالدی ایستاد. با صدای باز شدن درهای اتوبوس، دو مرد با ازنهای قوی به سرعت از اتومبیل بیوک مشکی پیاده شدند و در موقعیت خودشان در سمت تاریک پیادهرو قرار گرفتند. موقعیت آنها دقیقاً کنار اتومبیلی بود که راننده‌اش خود را مشغول رفع خرابی ماشین نشان میداد. کاپوت ماشین همچنان بالا بود و او روی آن خم شده بود. اتوبوس حرکت کرد. پشت سرش زنی را پیاده کرده بود که لحظه‌ای بعد مثل همیشه به طرف چپ حرکت کرد و پشت سرش هم مردی بلند آمد که عینکی طبی داشت پیاده شد. می‌دونستان او چند لحظه توقف خواهد کرد و سپس با آرامی شروع به حرکت به سمت می‌کند. مرد کمی خم شد و دستانش را در جیب پالتویش گذاشت. هوا سرد بود و باد میوزید. این هوا باد سخت و طوفان‌های پاییزی بای را نوید میداد. قدمهایش پشت سرهم در پس زمینه یک رعد رد و برق در افق ادامه میافت. برق لحظه زودتر زودتر میجهید و به سرعت دمیان ابرهای متراکم آسمان پنهان میشد. مرد با گمهای منظم به طرف خانهش میرفت. وقتی به اتومبیل بیو مردی که روی موتور اتومبیل خم شده بود، سرش را بلند کرد و به زبان اسپانیایی مرد عابر را مورد خطاب قرار داد. میتونم یک دقیقه وقتتون رو بگیرم آقا؟ مرد از آن سوال ناگهانی متعجب شد و ترسید. سوال غافلگیرانه ای بود و به نظر نمی رسید بی‌دلیل باشد. تعلیم نظامیش به او هشدار داد که موضوع مشکوک است. آن مرد و سوالی که پرسیده بود، نادیده گرفت و قدمهایش را تند کرد. دو مردی که در تاریکی پنهان شده بودند به او فرصت فرار ندادند و بلا فاصله به طرفش پریدند. در یک لحظه یکی از آنها او را رو روی زمین انداخت. خیلی زود مقاومتش را از دست داد. دو مرد دست‌هایش را بستند. یکی از آنها خود را رو رو روی او انداخت و دیگری پاهایش را گرفت و اینگونه کاملا بر او مسلط شدند. در عرض چند لحظه او را رو رو از روی زمین بلند کردند و به داخل ماشین انداختند. جسمش ابتدا با صندلی عقب ماشین برخورد کرد. و سپس به زیر آن قلتید. سر و صدای این اتفاق با صدای بسته شدن کاپوت اتومبیل در همام میق موتور اتومبیل روشن شد اتومبیل به راه افتاد و او روی کف ماشین افتاده بود. دو مرد پایشان را رو رویش گذاشته بودند تا در مکانش ثابت بماند صدای واضح به زبان آلمانی شنید که خطاب به او بود اگه تکون بخوری یا صدای ازت دربیت شلیک میکنم. دهانه یک هفتی سرش را لمس کرد صدای دیگری شنید. خیلی وقتی که منتظر این لحظه بودیم. از همون جایی که افتاده بود، هایش را شناخت. زبان قلبش تند شد. فهمید که سالهای فرارش تمام شده و کابوسهایش به حقیقت پیوسته است. فکر کرد که بانها آنها التماس کند، اما هفتیری که سرش را لمس می‌کرد به او خبر می‌داد که اگر چنین کند، هایش در اجرای تهدیدشان تردید نمی‌کنند. سایکت نفس عمیق بکشد و آرامش خود را باز یابد و تسلیم این موقعیت شود. میدانست انگیزه ی آنها قوی‌تر از آن است که بتواند با آنها گفتگو کند. فیلم زندگیش را با آرامی مثل یک نوار از ذهنش فیلم زندگیش با آرامی مثل یک نوار از ذهنش گذشت. آن لحظه‌ای که گمان میکرد از غاله ها بالا می رود و هیچ وقت فرود آمدن از آن اوجها را متصور نبود. روزهایی را رو به یاد آورد که دستورهایش بی‌چون و چرا اطاعت شد. او بود که برای عدهای حکم زندگی صادر می کرد و برای اد هم حکم به پایان کار و زندگیشان روی زمین میداد. چشمانش پر از اشک شد، روزهای فرارش از سرزمین آب و اجدادی را می میآورد به اینجا آمده و زندگی فقیرانه ای را شروع کرده بود به عنوان کارگر مکانیک در یک کارخانه در کشور آرژانتین مشغول به کار شد و آن زندگی با شکوهی را که با سقوط رایش سوم در آلمان به پایان رسیده بود از برد با صدای مملو و ضعف و خواهش با مردی که بدن او را با پاهایش به شدت لگد میکرد سخن گفت میدونم شما کی هستین؟ سعیکرد نفسی بگیرد و ادامه داد من جنایتکار نیستم و جرمی مرتکب نشدم پاسخ سری و قاطح شنید ساکت شو وگرنه شلیک میکنم